معاشران گره از زلفیار باز کنی شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنی حضور خلوت اون سست و دوستان جمعند و این یکات بخانید و در فراز کنید رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش، پیغام اهل راز کنید به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد گر اعتماد برالتاف کار ساز کنید میان عاشق و معشوق فرد بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس جنس اعتراض کنی هران کسی که در این حلقه نیست زنده به عیش بر او به فتوای من نماز کنی و اگر طلب کنند انعامی از شما حافظ حوالتش به لب یار دل نباز کنید